عزیزان شخصا میخوام به شما در جلسه دیگه از کلاس های دانشکردی کتاب مقدس خوش آمد بگم. ما ضمن بررسی هامون به بخش جدیدی رسیدیم. به یکی از وسیعترین ترین بخش ها که انبیا بود رسیدیم که به دو بخش تقسیم شده، انبیا بزرگ و انبیا کوچک. خداوند درس های زیادی از طریق این شانزه نبی به ما خواهد آموخت. تشویقتون میکنم که ترتیبی بدین که حتی یکی از جلسات رو از دست ندین و دست کم از یک نفر هم دعوت کنید که در طی این دوری مطالعه کتاب مقدس به ما ملحق بشه. این شما و این هم معلممون. خب ما کتاب شعر کتاب مقدس رو تموم کردیم و حالا وارد بخش جدیدی از کتاب مقدس شدیم. بخشی که به عنوان جوهر کتاب مقدس مطرح شده مخصوصا از دیدگاه عهد جدید در عهد جدید شما شرحی از این قسمت از کتاب مقدس رو که اکنون مورد بررسی قرار میدیم خواهید دید اون شرح شریعت و انبیا هست این روشیه که عهد جدید بارها به عهد قدیم اشاره میکنه وقتی که عهد جدید به عهد قدیم به عنوان شریعت و انبیا اشاره میکنه چیزی که به ما میگه اینه که دو بخش اساسی در عهد قدیم وجود دارند. اولین بخش اساسی از عهد قدیم شریعت هست که شامل پنج کتاب اول عهد قدیم پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تسنیمه هست و دومین بخش اساسی از عهد قدیم انبیا هست. این بخشی که اکنون به اون رسیدیم و آماده میشیم که کتاب اشعیا رو بررسی کنیم. در نگاهی اجمالی به کتاب مقدس گفتیم که ده نوع کتاب در کتاب مقدس وجود دارند. پنج نو کتاب در عهد قدیم و پنج نو در عهد جدید وجود دارند. در عهد قدیم ما کتاب‌های شریعت، تاریخ، شعر، امبیای بزرگ و امبیای کوچک را داریم. در عهد جدید ما چهار انجیل داریم که زندگی نامه عیسی مسیح هستند، یک کتاب تاریخ داریم، رسالات پولس را داریم و رسالات عمومی و یک کتاب نبوتی که همون کتاب مکاشفه هست. در قدیم بین کتاب های شریعت و انبیا دو نوع از کتاب ها وجود دارند کتاب های تاریخ و اشعار. کتاب های تاریخ بخشی رو تشکیل میدن که ما از یوشه شروع کردیم و در استر به پایان بردیم. ما بررسی کتاب های بین شریعت و انبیا رو به پایان رسوندیم که به اونها کتاب های شعر میگفتیم. یکی از مهمترین مطالب در مورد کتاب های تاریخ اینه که اون کتاب ها به ما زمینه تاریخی زمینه که انبیاء در اون زمینه زندگی و موزه می یادتون هست که وقتی کتابهای تاریخ رو بررسی میکردیم گفتیم که شما باید انبیا رو در کتابهای تاریخ ملاحظه کنید. چون همه این انبیا به قسمتهایی در این زمینه تاریخی و های تاریخی در این کتابها تعلق دارند. کاتبین و علمای دینی به کتابهای اشعار به عنوان نوشته اشاره کردند که کاملا مستثنا از کتابهای شریعت و هستند. کتاب شعر اشعاری الهامی هستند برحال جوهر واقعی عهد قدیم کتاب شریعت و انبیا هستند. وقتی که پنج کتاب اول کتاب مقدس رو بررسی می کردیم، گفتیم که اونها اساس و زیر کتاب مقدس هستند و به همین دلیل هم زمان زیادی رو صرف بررسی اونها کردیم حالا به کتاب های انبیا رسیدیم و شروع به بررسی اشعیا می کنیم. باید بدونیم که به بخش اساسی دیگری از عهد قدیم رسیدیم در عهد جدید شما مکررن با عبارت انبیا مواجه میشی من اون لحظه مهیجی رو که پولس رسول در زنجیر هست و از خودش در مقابل آگریپاس پادشاه دفاع میکنه خیلی دوست دارم اون آگهان زنجیرهاش رو بلند میکنه و میگه ای آگریپاس پادشاه آیا به انبیا باور داری میدونم که به انبیا ایمان داری وقتی که کتاب مقدس به انبیا یا شریعت اشاره میکنه معمولا یا به نوشته‌های نبوتی اشاره میکنه یا به انبیایی که کتاب نوشتند. انبیای بزرگ زیادی هستند که کتاب نانوشتند. ایلیا نبی بزرگی بود ولی هیچ کتابی ننوشته. وقتی عهد جدید به کتاب‌های شریعت و انبیا اشاره میکنه هم به نوشته‌های نبوتی اشاره میکنه و هم به تمامی انبیا، چه هایی که کتابی نوشتن و چه هایی که نانوشتند. وقتی که به انبیا میرسیم احساس میکنم که میخوام شما رو با بعضی از دوستان کوچک مقدس که قهرمانان کوچک و مقدس من نیست هستند آشنا کنم اگرچه تنها 16 نبی در این بخش وجود داره اما میبینیم که 17 کتاب نبوتی داریم چون که ارمیا دو تا از کتاب‌های نبوتی رو نوشته او کتابی رو نوشته که به اون کتاب ارمیا گیم و یک کتاب کوچک زمیمه که به اون مراسی ارمیا میگیم ما قبل از اینکه این, این ها رو یکی یکی بررسی کنیم، باید دیدگاهی کلی از تمامی اونها به دست بیاریم. در اولین جلسه از بررسی انبیا که بهش عنوان نمودار انبیا رو دادیم، قصد دارم دیدگاهی کلی از انبیا به شما بدم. یکی از اولین کارهایی که به این منظور باید انجام بدیم اینه که انبیا رو با کاهنین مقایسه کنیم. در های شریعت مهمترین رهبران روحانی کاهنین هستند و تمرکز اصلی بر روی کاهنین هست. کاهنین نقش عمده و وظیفه مهمی به عهده داشتند، چون اونها برای گناهان مردم در برابر خدا شفاعت می‌کردند. کاهنین از این نظر هم مهم بودند، چون که اونها معلمین قوم خدا بودند. کاهنین کلام خدا را به قوم خدا توضیح می‌دادند، به سوالات اونها درباره کتاب مقدس، درباره قربانی‌ها و آیین‌های مذهبی اعتقادیم در خیمه پرستش در بیابان و بعدها هم در معبد سلیمان توضیح می‌دادند. یک کاهن به عنوان کاهن به دنیا می اومد. چون از نسل هارون و یا از نسل لاوی بود کاهنین گاهی اوقات فاسد می‌شدند و تبدیل به مردمانی گناهکار می‌شدند. هوش این عبارت را ابدا کرد که کاهنین هر طور باشند مردم هم شبیه به اونها میشن. هرگاه مردم مرتد و گناهکار میشن این کاهنین بودند که راه زندگی گناهکارانه را برای اونها باز میکردند. به این دلیل هوش فریاد میزد مردم هم مثل کاهنین شدند. به این دلیل بود وقتی که کاهنین فاسد و گناهکار بودند و کسانی هم که از اونها پیروی میکردند مرتد و گناهکار شدند. انبیا در صحنه ظاهر شدند. اما انبیا نبی به دنیا نمی نمی‌آمدند. اونها از ای به بعد از طرف خدا برای نبوت دعوت می شدن. دو سه از انبیا وقتی به نبوت دعوت شدند کاهن بودند. اما اونها جز استثناها بودند. برخی از انبیا در هنگام دعوت عضوی از خانواده های اصیل یهودی بودند. ما انبیایی رو بررسی کردیم که از بستگان پادشاهان در کتاب تاریخ بودند. برخی از اونها از متن زندگی روزمره دعوت به نبوت شدند. آموز کسی بود که وقتی دعوت شد انجیرچینی چینی و چوبانی می‌کرد. خدمت و عرصه خدمت انبیا موروسی نبود. عرصه خدمت کاهنین بر اساس خاندان آنها موروسی بود. اساساً کاهنین کسانی بودند که به حضور خدا میرفتند و در مقابل خدا برای قوم شفاعت میکردند. انبیا کسانی بودند که از حضور خدا میآمدند و برای مردم پیغامی از طرف خدا میآوردند. غالبا این طور حس میشه که اگر مشکلی نبود، نبی هم در کار نبود. انبیا معمولاً در زمانهای بروز مشکلات و شرایط بحرانی ظاهر میشدند. ضمن اینکه کتابهای انبیا رو بررسی میکنیم، یک واقعیت تاریخی که باید به خاطر بسپارید اینه که همه این انبیاءی که کتاب نوشته اند، در یک دوره زمانی حدود 400 سال زندگی می کردند. تاریخ یهود می تونه به های 400 سال تقسیم بشه. قوم اسرائیل به مدت 400 سال در اصارت مصر بود، دوره کتاب داوران هم 400 سال طول کشید، بین کتاب های پیدایش و خروج هم 400 سال زمان سپری شد و همچنین 400 سال زمان بین عهد قدیم و عهد جدید سپری شد. انبیا از حدود 800 قبل از میلاد تا 400 قبل از میلاد خدمت می‌کردند. اینکه چرا همه انبیا در طی این 400 سال ظاهر شدن دلیلی داره. مردم گناهکار بودند. اونها مخصوصاً به خاطر بت‌پرستی به گناه افتاده بودند. چون که اونها خدایان غیر رو می‌پرستیدند، داوری خدا بر اونها به شکل حمله آشوری ها و اسارت پادشاهی شمال آشکار شد. حدود یکصد سال بعد از اون بود که بابلی ها حمله کردند و پادشاهی جنوب را به اسارت بردند. تمامی انبیایی که کتاب نوشتهاند یا قبل از حمله آشوری ها و بابلی ها و فتح و پیروزی اونها بوده و یا خدمت و موعظه های اونها در خلال وقوع این حوادث بوده. از این شانزده نبی 3 از اونها بعد از اسارت موعظه و خدمت کردند که در ارتباط با باسازی و استقرار مجدد و به دنبال اون بازگشت قوم از اسارت بابل بوده. بیشتر این بیا قبل از قلبه بابلیها و آشوری ها و به اسارت رفتن قوم خدمت کردند. یا در خلال این حملات و به اسارت رفتن خدمت می انبیایی که قبل از حمله آشوریها و به اسارت رفتن پادشاهی شمال و به اسارت رفتن پادشاهی جنوب خدمت می کردن اساساً این پیغام را مائزه می کردن. اگر بیداری روحانی داشته باشید، اگر واقعا از گناه بود پرستی توبه کنید، این حمله آشوری ها و بابلی ها و به اصارت رفتن پیش نخواهد آمد. این انبیا مردم را دعوت به بیداری روحانی و توبه می کردن. اکثر اوقات برای پیغام این انبیا گوش شنوایی وجود نداشت. مردم معزه های اونها رو رد می و خود را به نشنیدن می زدن. اونها را مسخره می کردن, دست می و قالبا اونها را می خشتن. بسیاری از اونها به خاطر موعظه هایی که کردند و کسی نمیخواست اونها رو گوش کنه کشته شدند وقتی این انبیا فهمیدن مردم به پیغام های اونها جواب نمیدن اونها پیغام حمله و اسارت رو موعظه کردند و گفتند وقتی زمانش فرا برسه داوری خدای قادر مطلق بر شما قرار خواهد گرفت چون که از بت توبه نکردید همونطور که در بررسی کتاب های تاریخی دیدیم وقتی آشوریها بر پادشاهی شمال غلبه كردند پادشاهی شمال به اسارت برده شد و دیگر هرگز نامی از اونها شنیده نشد اون ده تایفه شمالی که خود را اسرائیل می نامیدن به فراموشی سپرده شدند یکصد سال بعد بابلی ها بر پادشاهی جنوب حمله كردند بعد از اون انبیا پیغام امیدی در رابطه با این هجوم و اسارت مععظه كردند اونها مكاشفهای نبوتی دریافت كردند و گفتند هفتاد سال بعد شما از این اسارت باز خواهید گشت اونها بازگشت از اسارت بابل را با به عنوان نشانی از رحمت و فیض خداوند دیدند اگرچه بسیاری از انبیا زنده نبودند تا این واقعه را ببینند غیر از خدمتی که شرط دادم خدمت انبیا بعد دیگری هم داشت در کنار فریاد اونها برای توبه و بیداری اونها برای ادالت اجتماعی هم می کردند. وقتی این اصر ما به ادالت اجتماعی اشاره میکنند اونها در معزه هاشون بخش از انبیا رو انتخاب می کنند چون که انبیا علیه بیادالتی دوره خودشان اعتراض کردند. اگرچه تأکید اصلی معزه این انبیا بر ادالت اجتماعی نبوده مهور اصلی معزه اونها گناه قوم خدا بوده خصوصا با بود پرستی اونها انبیا این رو معزه می که داوری خدا توسط این دو مورد اصارت بر قوم خودش خواهد آمد در مورد اسارت بابل یکی از معزه های انبیا در مورد رحمت و فیض و امید بود. امیدی که توسط انبیا برای پادشاهی جنوب یهودا موعظه شد تنها امیدی بود که قوم خدا توانستند با اون اسارت بابل رو تحمل کنند. وقتی انبیایی مثل ارمیا بازگشت از اسارت رو موعظه کردند، اونها رحمت و فیض خدا رو موعظه میکردند. موضوع جالب دیگر در پیغام انبیا، پراکندگی قوم خدا در اقصای زمین بود وقتی که اونها این پراکندگی رو موعظه میکردند همیشه بازگشت از این آوارگی رو نبوت میکردند وقتی اونها بازگشت از اسارت بابل رو موعظه میکردند اون رو با وعده هایی همراه میکردند که اغلب اونها رو به عنوان نبوتهای مسیحایی میبینیم جدا کردن نبوتهای مسیحایی از نبوتهای عملی بازگشت از اسارت بابل که 70 سال بعد قرار بود اتفاق بیفتد مشکل بود. همینطور جدا کردن نبوت‌هایی که از آمدن مسیح خبر می‌داد از نبوت‌هایی که حتی از زمان ما هم فراتر می‌رود بازگشت ثانویه مسیح کاری دشوار است راه حل بزرگ خدا توسط ناجی و پسرش عیسی مسیح خواهد بود این نبوت‌ها آمدن مسیح در دو مرحله رو نشون می‌ده او بار اول به عنوان ناجی که رنج میکشه میاد و برای گناهان دنیا می‌میره اما وقتی دوباره برمیگرده چیزی که به اون بازگشت سانویه عیسی مسیح میگیم برای سر و سامان دادن به امور هست. نبوت های که با نبوت بازگشت از اصارت بابل مخلوط شده، هیجانانگیزترین انگیزترین ارسه های کتاب های انبیه کلمه نبی عملا به معنی کسی هست که از طرف خدا حرف میزنه، پس نبی انسانی هست که خدا به واسطه او حرف میزنه. این اصلی ترین معنی برای کلمه نبی هست این انبیا بیا از دو جنبه از طرف خدا صحبت کرده. اولا کلام خدا را اعلام کردند. این نشون میده که اونها واعظین بزرگ کلام خدا بودند. اونها همینطور پیشگویی کردند یا حوادثی را رو پیش بینی کردند که هنوز اتفاق نیفتاده بود. بعضی از واقعی که پیش بینی کردند هنوز قرار هست اتفاق بیفته. وقتی ما کلمه نبی رو میشنویم فکر میکنیم که نقش نبی مثل کسیه که حال و هوای روحانی رو پیش بینی میکنه. مردم شیفته بود پیشگویی خدمت انبیا هستند. عرصه پیشگویی خدمت انبیا مهیج قسمت از خدمات اونها بود اما فی نفسه بخش کوچکی از خدمات اونها بوده. انبیا اساسا پیشگویان روحانی نبودند. اونها واعظ بودند. اونها کلام خدا را با اقتدار موعظه میکردند. انبیا و کاهنین هر دو مردم را با کلام خدا خدمت میکردند. کاهنین کلام خدا را توضیح میدادند. کلام خدا را به مردم تعلیم می‌دادند و به سوالات اونها در مورد کلام خدا پاسخ می‌دادند. انبیا مردم رو تشویق می‌کردند که از کلام خدا اطاعت کنند و اون را در زندگیشون به کار بگیرند. انبیا گاهی مکاشفه‌های نبوتی از حقایق تازه دریافت می‌کردند. اما اکثرا انبیا که از یوشه شروع میشند کلام مکتوب خدا را که قبلا توسط موسی به قوم داده شده بود، می می‌کردند. این انبیا شریعت موسی را معظمه یکی از برکات بزرگی که میتونید در نتیجه بررسی کل کتاب مقدس تجربه کنید اینه که با کل کتابهای کتاب مقدس و با کلام به شده از طرف خداوند آشنا میشی وقتی که من برنامه این دوره بررسی رو آماده می کردم بزرگترین برکت من زمانی بود که خودم رو آماده میکردم که بررسی کتابهای انبیا رو ترتیب بدم وقتی خودم را آماده می کردم تا انبیا رو به شما درس بدم از چیزهایی که یاد گرفتم هیجان زده شدم چیزی که ما با مطالعه کتاب‌های انبیا بینیم اینه که وقتی کار خدا در این دنیا با مانعی روبرو میشه خدا نبی رو میانگیزه. یکی از وظایف اصلی اون نبی اینه که در مورد اون مشکلات و موانع کار خدا به مردم هشدار بده تا اینکه اون مشکل برطرف بشه وقتی اون مانع برطرف شد کار خدا دوباره به جریان میافته، چون که نبی وظیفه اصلی خودش را انجام داده به این دلیل که غالبا این احساس هست که وقتی مشکلی نیست از نبی هم خبری نیست یادتونه که گفتیم تمامی انبیایی که کتاب نوشتند در یک دوره زمانی 400 ساله در تاریخ قوم یهود زندگی و موعظه کردند چون که قوم خدا دو مشکل وحشتناک را تجربه میکردند غلبه اشوری ها و به اسارت رفتن پادشاهی شمال و حجوم بابلی ها و به اسارت رفتن پادشاهی جنوب. انبیا به اون دو مشکل و مانع اشاره کردند تا اینکه که اسارت بابل حل شد و کار خدا در دنیا از سر گرفته شد. کار خدا چنان ترتیب یافته بود که توسطی قومی خداشناس مسیحا و نجات وارد این جهان بشن. تعریف دیگه ای که برای کلمه نبی وجود داره کلمه نبی از دو کلمه تشکیل شده که معنی هر کدوم از اونها اینها هستن. استادن در مقابله و روشن کردن نبی در مقابل کلام مکتوب خدا میسته و کلام خدا رو روشن میکنه تا اینکه قوم خدا بتونند کلام خدا رو درک کنند انبیا به مردم نشون دادن که چگونه کلام خدا رو در زندگی هاشون به بگیرن و به مردم نصیحت کردند که از کلام خدا اطاعت کنند ایلیا نبی بزرگی بود در دوره ایلیا مردم از خدا برگشته و به پرستش بل روی آورده بودند و چون مردم بل رو می پرستیدن کار خدا متوقف شد از این رو خدا ایلیا را برانگیخت. ایلیا در مورد مشکل و مانع پرستش بل فریات میزد و هشدار میداد که این مانعی برای انجام کار خداست تا اینکه بالاخره این مشکل حل شد و تمامی انبیاء بل از بین رفتن و بعد از اون کار خدا توسط قومش دوباره با برکات خدا ادامه پیدا کرد دانیال به نظر می که برانگیخته شد که در مقابل مشکل اسارت بابل به مردم خدمت کنه. چطور قوم خدا از اوتۀ اسارت برآمده بود؟ فرض کنید این دنیا زیر و رو بشه و توطعه جهانی بر دنیای آزاد غلبه کنه. هرچند فکرش هم آدم رو نابود کنه اما فرض کنید که این اتفاق بیفته. فرض کنید که اون ده از ما که شاگردان عیسی مسیح هستیم و زنده موندیم قرار بشه که به سیبری فرستاده بشیم. و در اونجا در معادن زغال سنگ به مدت سه سال کار کنیم و یا تا زمانی که بمیریم. فرض کنید که اونها بر کلیسه ها، کنیسه ها و معابد قفل بزنن و هر نوع فعالیت مذهبی، ممنوع و غیر قانونی اعلام بشه. بسیاری از مردم میگن که خوب خدا اهمیتی نمیده. توی این شرایط خدا نمیتونه کاری بکنه. مردم فرهنگی رو یاد نمیارن که در اون فرهنگ کلیسه ها متولد شدن. در دوره‌ای که امپراتوری روم که مسیحیت را رد کرده بود بر تمام جهان حکومت می‌کرد، ها در چنین فرهنگی پا به عرصه وجود گذاشتند. کلیساها هرگز در هیچ دوره ای از تاریخ و اندازه‌ی 300 سال اول تاریخ وقتی که مسیحیت غیرقانونی بود، قوی نبودند. وقتی که قدرت‌های سیاسی مردم را اسیر می‌کنند و اونها را به معادن نمک می‌فرستند و اونها را استثمار می‌کنند، خدا بیکار نمی‌شینه. هفتاد سال بعد از اسارت پادشاهی جنوب یا یهودا، اونها از اسارت بازگشتند. قوم یهودا که از اون موقع به بعد یهودی نامیده شد، باید میدونست که چطور از پس هفتاد سال اسارت بر بیاد تا اینکه خدا بتونه قوم مقدسش رو خلق کنه. بنابراین خدا مرد جوانی به نام دانیال رو برانگیخت و از او خواست که نزد مردمی که در اسارت هستن بره و به اونها نشون بده که چطور تا زمانی که اسارت خاتمه پیدا کنه از اوخته اون بر بیاند دانیال در سرتاسر سر 70 سال اسارت بابل زندگی میکرد وقتی اورشلیم سقوط کرد او یک نوجوان بود او و هزقیال با هم هم سن بودند هزقیال 9 سال بعد از دانیال به اسارت رفت وقتی که حدوداً 25 سال داشت اما دانیال وقتی 14 سال بود به اسارت رفت اون نوجوان توسط خدا به عنوان نبی برانگیخته شد تا به مردم نشون بده در بابل چطور زندگی کنند بابل بعدها تبدیل به پارس شد. منظور و وظیفه دانیال به عنوان نبی این بود که به قوم خدا نشون بده چطور تا زمانی که از اصارت برمیگردند این دوره رو تحمل کنند. اگر یک قدرت خدا نشناس دنیای آزاد رو فت کنه ما واعظین ناپدید میشیم. تعجب خواهید کرد که چه اتفاقی برای ما افتاد. شبانانی که تحت سلطه چونین حکومتی زندگی می در نیمه های شب نا یادتون باشه اگر در کشوری زندگی میکنید که مانند کشور دانیال هست، دانیال به شما نشون خواهد داد که چطور اون اسارت رو تحمل کنید. وظیفه دانیال به عنوان نبی این بود که همینو نشون بده و هنوز هم هست. شما این رو در مورد تمام انبیا خواهید دید. وقتی که به هر نبی میرسید، باید از خودتون بپرسید که چه مشکلی کار خدا را به تاخیر انداخته بود که این شخص به عنوان نبی فراخوانده شد؟ این نبی چطور با خدمت خودش مشکلات و موانع کار خدا رو در دوره خودش رفع کرد؟ مثلا در دوره حجی نبی که مقارن ایام بازگشت از اسارت بابل بود، کار خدا مربوط به بازسازی معبد خدا در اورشلیم بود. وقتی قوم خدا شروع به بازسازی معبد کردن، اونها باید آزار و عذیتی جدی رو تحمل می کردن. اگرچه به اونها اجازه داده شده بود از اسارت برگردند و معبدشون رو بازسازی کنند، وقتی شروع به بازسازی معبد کردن با مخالفتها رو برو شدند وقتی که آزارها شروع شد اونها کار بازسازی معبد رو متوقف کردند. بعد اونها حواسشون پرد شد و مشغول ساختن خانه های خودشون شدند سالها به همین منوال گذشت تا اینکه خدا حجی رو برانگیخت. معزه اصلی حجی در مورد معبد بود او برای مردم اینطور طور معزه می کرد آیا این درسته که خانه های خودتون رو تعمیر کنید و در خانه های نوساز و مسقف بنشینید و خانه خدا ویرانه باقی بمونه؟ حجی برای مردم معزه کرد و اونها رو نصیحت کرد که به سر کارشون برگردن و معبد خدا رو بازسازی کنند. به خاطر معزه حجی مردم دست از ساختن خانه های خودشون کشیدند. اونها تمام امکاناتشون رو به کار گرفتن و خدا رو در اولویت قرار دادن و ساختن خانه خدا اولین اولویت اونها شد. و بعد خانه های خودشان به این ترتیب کار خدا از سر گرفته شد و حجی از صحنه خارج شد این وظیفه و هدف حجی بود کار خدا ترک شده بود و حجی به صحنه آمد و کار خدا را در اولویت قرار داد و به این ترتیب شما وظیفه انبیار رو در سراسر نوشته های نبوتی عهد قدیم خواهید دید رسالات عهد جدید به موازات همین الگویی که در کتب نبوتی عهد قدیم دیدیم قرار گرفتن. یک بار نوجوانی از من پرسید آیا رساله زن رسول هست؟ به نظر او اینطور رسیده بود که رساله همسر یک رسول هست. رساله نامه ای هست که توسط یک رسول نوشته میشه. در عهد جدید کار خدا ساختن کلیسای مسیح هست. وقتی که مشکلات ظاهر میشند، مشکلات و موانعی که کار خدا ساختن کلیسای مسیح رو به تعبیق می خدا رسولی رو برمیانگیزه و او ای می نویسه هدف از اون رساله چیه؟ هدف از رساله رسول اینه که علیه مشکلات و موانعی که ساختن کلیساهای خدا رو به تعویق میندازن به مردم هشدار بده تا اینکه اون مشکلات و موانع رفع بشن و کار خدا از سر گرفته بشه. وقتی انبیا رو میخونید باید این سوالات رو بپرسید. چه مشکلات و موانعی مانع کار خدا شده و چطور این نبی با خدمتش اون موانع رو رفع میکنه؟ وقتی رسالات عهد جدید رو می باید این رو بپرسید کاربرد شخصی و عملی این رساله برای زندگی من چیه خدا میخواد خواد کارش رو توسط قومش انجام بده این امروز همون اندازه حقیقت داره که در ایام انبیا و در ایام رسولان حقیقت داشت اگه به اعتقاد شما کار خدا در دنیای امروزی جایی که خدا شما را به لحاظ استراتژیکی اونجا قرار داده با مانع و مشکلی متوقف شده اگر بر این باور هستید که خدا اونطور که میخواد کار نمیکنه. اگه کار او متوقف شده اونقدر به دعا ادامه بدید تا بدونید که اون مانع کار خدا چی هست. وقتی فهمیدید چه مانعی بر سر راه کار خدا وجود داره اون وقت به کتب انبیا و یا رسالات رسولان مراجعه کنید. اون وقت میبینید که رسولان و انبیا در کتابهایشان موانع و مشکلاتی رو که مانع کار خدا در دوره شما میشن شرد دادن و بعد از اون شما تشویق میشید که این پیغام انبیا و رسولان رو با دیگران در میون بذارید. وقتی میبینید که انبیا چطور در مورد موانع کار خدا فریاد میزدند تا زمانی که اون رفع میشد و کار خدا از سر گرفته میشد شاید این برای شما کلیدی باشه که بتونه موانع و مشکلات کار خدا رو در دوره شما حل کنه شاید خدا از شما میخواد که برای او یک نبی باشید و در مورد مشکلات و موانعی که کار خدا رو متوقف کردند فریاد بزنید تا اون مشکل حل بشه و کار خدا از سر گرفته بشه خدا میخواد در زندگی شما کار کنه او میخواد در زندگی من هم کار کنه شاید کار او در زندگی شخصی خودتون باشه که گره خورده اگر اینطور هست شما باید به این کتاب های انبیا و رسالات مراجعه کنید و متوجه بشید که چطور موانع سر راه کار خدا باعث توقف کار او شده و بعد با تطبیق اونها با کار خدا در زندگی شخصی خودتون میتونید موانع رو رفع کنید تا خدا بتونه یک بار دیگه اونطوری که میخواد در زندگی شما کار کنه لازمه که کتاب‌های انبیا رو مطالعه کنید چون مشکلات و موانعی که در رسالات عهد جدید بر اونها تمرکز شده همون مشکلات و موانعی نیستند که در کتاب‌های انبیا در عهد قدیم بر اونها تمرکز شده خدا هیچ جایی رو در کتاب مقدس بی خودی هدر نداده او فضای لازم برای موضوعات مختلف رو به دقت بررسی کرده در مقدمه یک کتاب مقدس دیدیم که چهار تا انجیل داریم این را به خاطر میارید اونجا گفتم که 89 باب در این چهار انجیل وجود دارند که زندگی نامه ی مسیح رو به ما ارائه میدن بر اساس اناجیل چه چیزی در زندگی مسیح از همه مهمتر بود چهار باب از 89 باب در انجیل تولد عیسی مسیح و سی سال اول زندگی مسیح رو ثبت کرده 85 و باب به سه سال آخر زندگی مسیح اختصاص یافته. بیست و باب به آخرین هفته از زندگی مسیح اختصاص یافته. پس چه چیزی در زندگی مسیح بیشترین اهمیت رو داره، تولد او؟ سی سال اولی که زندگی کرد یا آخرین هفته ای که زندگی کرد؟ آخرین هفته زندگی او حدوداً هفت برابر مهمتر از تولد و سی سال اول زندگی او هست وقتی خدا کتاب مقدس رو می میزان فضا برای او مهمه. به این دلیلی که انبیا اهمیت پیدا می کنند و به این دلیلی که ما اونها رو مطالعه می کتاب‌های نبوتی بخش اعظم کتاب مقدس رو دربر می گیرند. در این بخشی که الان مطالعه می کنیم، بابها و آیات بیشتری از سایر بخش کتاب مقدس وجود داره. با وجودی که فضای بیشتری به این بخش اختصاص داده شده، و بابها و آیات بیشتری در این کتابهای نبوتی وجود داره، اما مردم احتمالاً در مورد انبیا اطلاعات کمتری دارند تا در مورد سایر بخشهای کتاب مقدس. اگر از این واقعیت آگاه بشید که خدا خیلی به مسئله اختصاص فضا به موضوعات در کتاب مقدس اهمیت داده، شاید بتونید متوجه بشید که ما به زودی مهمترین بخش از کتاب مقدس رو بررسی خواهیم کرد. در این کتاب‌های نبوتی بر مشکلات و موانعی تمرکز شده که مانع کار خدا در دنیا یا مانع کار خدا در زندگی شخصیتون میشن. اینها برای ما به طور برجسته در این کتاب ثبت شده. در هیچ کجای دیگر از کتاب مقدس بر این مشکلات تمرکز نشده. لازمه که چیزی درباره دیدگاه تاریخی در رابطه با انبیا بگم. من بارها به این اشاره کردم که وقتی شما کتاب مقدس رو بررسی می‌کنید با چالش عظیمی روبرو هستید وقتی این کتاب ها رو در کتاب مقدس به ترتیب تاریخ وقوع کناره هم قرار بدید کتاب های کتاب مقدس بر اساس تاریخ نگارش اونها تدوین نشدند جایگیری اونها در کتاب مقدس بر اساس محتویات اونها هست این در سرتاسر سر کتاب مقدس صدق میکنه بنابراین شما به خاطر درک زمان وقوع اونها با چالش بزرگی مواجه میشید وقتی کتاب‌های انبیا رو می‌خونید به لحاظ تاریخی تاریخ وقوع اونها چه زمانی بوده این انبیا در کجای کتاب‌های تاریخی قرار گرفتند و به لحاظ ترتیب تاریخ وقوع این انبیا در چه دوره‌ای زندگی و موعظه کردند و رنج دیده و مردند شما باید سعی کنید که اینها رو پیدا کنید من در طول بررسی این کتاب‌ها سعی خواهم کرد به شما چشم های تاریخی بدم من یک محقق نیستم و این هم یک دوره مطالعات تحقیقاتی نیست. من فقط یک شبان کوچک و دوست داشتنی و چشم قهوه‌ای هستم. من سعی ندارم که به این دوره سمت و سوی تحقیقی بدم. من نمیخوام که شما را با تاریخ خسته کنم، مخصوصاً با تاریخ‌های وقوع. بر اگر شما بخواید بدونید این انبیا در چه موردی صحبت کرده اند، اگر بخواید بدونید که اونها چه چیزی در دل داشتهاند و چرا کافیه که فقط بعضی حقایق تاریخی رو بدونید. شما لازمه که در مورد دو حمله و دو مورد اسارت رفتن اطلاعاتی داشته باشید. حمله آشوری ها و به اسارت رفتن پادشاهی شمال به آشور و حمله بابلی ها و به اسارت بردن پادشاهی جنوب به بابل. انبیا خیلی بیشتر نگران این دو واقعه هجوم و اسارت بودند. وقتی که انبیا نگرانیشون رو اظهار می‌کنند، اونها بیشتر در مورد چهار شهری که سقوط کردن صحبت می کنن. شما حتما اسم کتاب افسانه دو شهر رو شنیدید به لحاظی میشه این کتاب نبوتی رو افسانه چهار شهر نامید دو پادشاهی که به پادشاهی شمال و جنوب هجوم آوردند هر کدوم پایتختی داشتن پایتخت آشور نینوا بود این کتاب های نبوتی سقوط نینوا رو شرح می دن. بابل پایتخت دشمن دیگه اونها یعنی بابلی ها بود این دو شهر هر دو بسیار بزرگ بودند و شرح سقوط و اونها هیجانانگیزه این هجوم و اسارتی که انبیان گرانش بودن سبب سقوط پایتخت های پادشاهی جنوب و شمال شد پایتخت پادشاهی شمال سامره بود سقوط سامره در این نوشته های نبوتی شرط داده شده پایتخت پادشاهی جنوب اورشلیم بود تمرکز اصلی در این کتاب های نبوتی بر سقوط اورشلیم قرار گرفته و به اسارت رفتن قوم خدا در درجه دوم اهمیت قرار گرفته این بسیار مهمه که بفهمیم که کتاب‌های تاریخ ظهور و سقوط پادشاهی‌های اسرائیل و یهودا را برای ما شرح دادند کتاب‌های شعر دوران طلایی پادشاهی رو شرح میدن که قوم خدا به سموئل گفتند پادشاه کتاب کتاب‌های شعر بیشتر بر اعتلای این پادشاهی تمرکز دارند اما کتاب‌های نبوتی بیشتر بر سقوط اون پادشاهی متمرکز شدند بذارید یک بار دیگه بگم که تمامی این انبیایی که کتاب نوشتهاند در یک دوری 400 ساله از تاریخ قوم یهود زندگی می کردند همه اونها در خلال دوران تاریکی که قوم خدا به اسارت رفتن معزه می کردند. یعنی وقتی پادشاهی شمال اسرائیل و پادشاهی جنوب یهودا مورد هجوم واقع شده و سقوط کردند در خاتمه همه اونها در خلال دوران تاریکی که قوم خدا به اسارت رفتن موعظه کردن. یعنی وقتی پادشاهی شمال اسرائیل و پادشاهی جنوب یهودا مورد هجوم واقع شده و سقوط کردند در خاتمه به یاد داشته باشید وقتی این کتاب‌های نبوتی رو می‌خونید دنبال های عملی پیام‌هایی باشید که این انبیا در موعظه هاشون دادن. شناخت این انبیا به شما درس‌های بیشتری از زندگی و پیغام های اونها خواهد داد پس وقتی هر نبی رو بررسی کنید سعی کنید او را بشناسید و از خودتون بپرسید او دقیقا چه چیزی را موعظه میکنه وقتی هر کدوم از این انبیا موعظه کنند به مشکلات و موانعی که کار خدا رو به تاخیر انداخته که در نتیجه مستقیم موعظه انبیا رفع شدن نگاه کنید دوستان آیا موانعی در زندگی شما، خانواده شما یا در کلیساتون هست در حالی که کتاب‌های انبیا رو می‌خونید، خواهیم دید که خدا چطور یک نبی رو برمیانگیزه تا قومش رو به چالش بکشه که بر مشکلات غلبه کنند. چیزهای بیشتری هست که می‌تونیم یاد بگیریم. ترتیبی بدین که در طول بررسی کتاب‌های انبیا بتونید با ما همراه باشید تا برنامه بعدی در ایمانتون اسوار و مقاوم بمونید. و بشارت او رو به همه اعلام کنید.